خب بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به درخواست خود شمای عزیز اول قائده رو بخونیم بعدش امثل رو دیگر روی و قائده رو مختصر توضیح میدیم القائده نوح قائده شماره 9 التشمیح زمنی تشبیه تشمیح زمنی صفحه چلو از التشمیح تشبیه و تشبيه لا يوضع فيه المشبهه والمشبه به في صوره بصوره التشبيه المعروفه بل يلحان في التركيب وهذا النوع يئتى به ليفيد ان الحكم الذي اسند إلى المشبه باب كنون بيج تشبيه زي بني که قرار داده دا نمیشه درش مشبه ومشبه به به همان شکلی از حالت تشمیح معروف اون تشمیحی که قبلا گفتیمش بلکه در ترکیب بهش اشاره میشه یعنی ترکیبی نیست که مثل بقیه, بقیه تشمیح که تا اینجا کار خوندیم بیاد یه چیزی رو به چیز دیگه تبقه اون روال تشبیه بکنه بلکه در کلام بش چی میشه اشاره ای میشه که این آقا شبیه به اوده حالا دقت کن تو مثلا این نوع تشبیه چرا را میگه آورده میشه و هذا نوع يؤتب له يفيدن الحكم الذي اسند الى المشبهه ممکنو این نوع تشبیه آورده میشه این نوع تشبیه استفاده میشه تا افاده بکنه تا به ما بگه که حکمی که مشابه به اون مصنحت شده ممکن هست چیز چی هست؟ ممکن ب... این حکمی رو که مشابه بشه مصنحت شده این حکمی رو که به مشابه مصنحت شده یه چیزه ممکنی این یولهمان یه نشیون یه اشاره, اشاره. بیشوات بله تلویح آ با الحام با اشاره حالا دقت داشته باش الامثله قال ابو تمام ابو تمام گفته لا تنکیری عطل الكریم من الغنا میگه انکار نکن خالی بودن انسان کریم رو از بیلیازی فسیل و حرب للمكان العالی سیل دشمنیش با مکان بلنده مکان بلندو خالی میکنه میگه اینی که انسان کریم دستش خالیه اینو چیز شگفتی چیز نکره ای ندان سیل کدوم مکانو بیشتر از بین میبره جای رو که بلنده میگه از سر فرسیدن چرا سمره نداری؟ گفت آزادگان توحیده سند. گفت آزادگان پس اینجا در این مثال میبینیم که طبق اون تشبیه متعارف ما مشبه و مشبه و مشبه نداریم ولی خیلی قشنگ اومده دستخالی بودن کریم و تشبیه کرده به این چیز که به خاطر بازبودن دستشه به خاطر این که در دید همگان قرار داده برای بخشیدن بباننده مکانه بالایی که سل بیاده رو چکار میکنه خرابش میکنه این حسان کریم هم دستش خالی میشه وقال ابن الروبي ابن الروبي گفته قد یشیب الفتا و ليس أن ایورا نور فی القضیب الرقیب گاهی میبینه که جوان نوجوان جوان پیر میشه موی سفید برش در بیاد. ریش سفید برش در بیاد. ولی این چیز عجیبی نیست چرا؟ چون که نور در شاخه سرسبز هم دیده میشه یعنی گله سفید گل سفید در یک درخت سرسبز خورن هم دیده میشه دیدی به چه شکلی اومد اینو شبیه به اون کرد بیگه قدیشی ملفتا گاهی آقا یک جوان یک نوجوان چی میشه؟ پیر میشه. ولیس عجیبا ای یورا دور فی القضیب الرطیب و این چیز عجیبی نیست که نور دیده بشه در شاخه سبز. سبز سر سبز سرسبز تازه نور بله بله خب ببین اینجا به ما گفت همان ترکیه درخت خوبه تر سرسبز و تازه گلای زردی داره یک جوان بی تو ریشهای سفید درش باشه بوهای سفیدی درش باشه ولید ولید به شکل اول متعارفی تشبیه نه آوردا متوجه شدی و قال ابو الطیب من يهن يسهل اليسهل الهوالو يا يسهل عليه هرکس اهانت بکند تحمل اهانت برشم ساده میشه سهل میشه مال جرحن ببیتن ایلا زیرا زخمی که روی انسان برده درست میشه درد نداره ببین چقدر قشنگ گفت همانطور که انسان مرده اگر روش زخم باشه درد نداره انسانی که کارش این بوده که اهانت میکنه خودش هم اهانت بشه مشکلی براش نیست من یهون ایهان یهونو هست ولی چون اینجا مجزومه شده یهون علفش حصف شده آه باوتل عجفت که اینجوری هرگاه بشه در سیغاه مفردش حرف اله چی میشه؟ حس میشه این من شرطی هستا هم یهون یه باش مجزوم شده هم یسخل من یهون یه یسخلل هوانو علیه هرکس احانه بکنه احانت بکنه احانت کردن برش چی میشه؟ ساده میشه همانطور که انسان مرده زخم برش درد نداره بر اون احانت بشه برش آسانه بله کسی که خودش بیشه احانت میکنه اگه خودشو هم اهانت بکنند بر... سخت نیست برش ولی دیدید چطوری اینا رو شباهتا رو آورده بود این رو بگن تشبیح زمدی حالا بیا برید درس بعدی که قاعدشم. هر چیز شی که مالی جرحین بیمهیتین ایلامین با اون شی رفته که یک رابیتای داشته خوب خب بیگه همانطور که یک انسان مرده خودش مرده درش درد وجود نداره اینجا هم انسان اهانت کننده اهانت برش اینو به درد نبیاره احانت برش آسانه بعدی شفه شون چیه استاد؟ خب وجه شبه این نیست اگه وجه شبه بود که دمشه نمی چی زمنی آره بعد این اینجا ببین اینجا خیلی باید کار کرده باشی تا این تشبیه زمینی رو تش... ولی ساده هست بحث سادهیه فقط اینجا تلمیحن تشبیه میکنه در تشبیه زمینی خودش گفت که بلیل هماری فی ترکیب بلکه به شکل بله حالا بیا صفحه بعدی اغراض و تشبیح کنیم نه دیگه زیب بباد امسل رو حل میکنیم با قوایت زود تمومش کنیم انشاءالله کتاب بعدی رو شروع میکنیم اغراض و تشبیح به خاطر اینکه که خود قوائد برای ما امسال خیلی مهمه. خود چی؟ قوائد در اغراض و تشمیح بیا آقا به چه هدف شخص میاد تشمیح به کار بیبره اهداف و آرمانه های تشمیح چه هستند؟ چرا من بیام به بکار ببرم در گفته هایم تو این درس این اغراضو برای ما چه کارم توضیح ده این غراض ها و هدف ها رو القائد قاعده ده همه کتاب بیا اغراض تشبیه کثیرتون میگه اغراض تشبیه زیاد هستن بین حمایتی از جمله اینایی که اینجا آورده. یک یا علف علف بیان و امکان المشبه بیان این که مشبه ممکنه. بیان این مشبه چیه؟ چه تو ابي بقين. بايلت. بعدي القائده. بقينة. اغراض التشبيه كثيره منها ما ياتي أغراض التشبيه بزياده عن الجملتين اللي كلياتك بيان وكان المشبه. بيان إن ك مشبه شيء ممكنه وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له. بجي مخصوصا زماني ك مسند مشبه بمشبه امر غريب که این غرمتش غریب بودن و شگفتی ازش از بین نمیره مگر این که برای اون مسئله چی رو شبیه رو ذکر میکنی که در امثل اینا رو بیاره با غرز بعدی بیان و شما بیای حالت مشبه چکار میکنی؟ بیان میکنی و ذلك حینما یکونو مشبه و غیر معروف صفتی و چه زمان این تشبیه رو کار میکنی؟ این زمانی که مشبه صفتهش قبل التشبيه معروف ليست شناخته ليست وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفه قبل التشبيه زماني كم مشبه صفتهش قبل التشبيه معروف ليست فيفيده التشبيه الوصفة افاده بيكون المشبه رو تشبيه بشي وصفه بش یه وصفی میده که چی میشه؟ اون وصف با اون وصف مشخصش میکنه، معروفش میکنه بی حا بیان و مقدار حاله بخد مقدار حالش رو بیان بکنه بی مقدار حالش رو چکار بکنه؟ وذالک اذا كان المشبه معروف الصفتي قبل التشبیه معرفتا اجمالیتا میگه چه زمان این مقدار حالتش رو بیان میکنه. بی زمانی است که مشبه صفتش قبل از تشبیه معروفه ولی بشکل به شکل چه؟ و التشبیه تشبیهو یبینو مقدار ها ذه و تشبیه بیاد مقدار این صفتو واضح میکنه مشخصش میکنه بیانش میکنه اینا رو تو امثله آورده دال تقریر حالی. یکی دیگه از اهداف تشبیه تقریر همون حالت که داره همون حالتو داره ولی اثباتش برای دیگران خیلی سخته با تشبیه بیاد اون حالتو چه بکنه اثبات بکنه كما اذا كان ما مشبه، الى المشبه يحتاج الى التثبيت والايضاح بالمثال اذن زمانی که آنچه که موصنف شده به مشبه نیاز به تثبیت داره به چی داره؟ تقبیح. واضح تر کردن داره. ها تذیر البشبهی او تقبیحه و, و غرض بعدی زاوردن تشبیه اینه که شما می‌خوای؟ مشبه او یا تذیر کنی یا تقبیح مشبه او یا می‌خوای زیبایی بیان کنی؟ زیبا جلوهش بدی برای دیگران؟ یا می‌خوای زشت برای دیگران مشبه او کنی؟ جلوه بدی هلا بيك توی امثله این کارو کرده اقرا اغراض التشبیه اهداف التشبیه الامثله قال البحتري دان إلى الأيدي دي الغفاتي وشاسع ان كل ند في الندى وضريبي بيگه نزدیک هست <تصفيق> به دستان محتاجان و دور هست از هر همانندی در بخشش و دور هست از هر همانندی در چه در بخشش خب اینجا شاعر میخواد حالا بیت بعدی رو داشته باش اینجا بحتوری اومده ممدوحش رو در بیت اول گفته که برای محتاجا نزدیک هست اما جایگاهش دوره منزلتش چیه؟ دوره و بین اون و بین هماناندهش که بزرگوارند بخشندند فاصله زیادی وجود داره خب اینجا برای, و... برای ممدوحش دو تا صفت آورد یکی این گفت نزدیک، یکی اینکه که گفت, نازیکه, یکی این که گفت چیه؟ دوره حالا میخواد که بگه که آقا این چیز یه چیز متناقضی نیست و یه چیز ممکنیه و یک چیز چیه نظبیات با تشبیح این مسئله رو به ذهنها بی قبولانه. دقت کن بیت بعدی رو کلبادری افرط فی العدوی في العلوي والضوءه للعصبة السارينة جد قريب دقاتكم نجا بيجي معنى ان ده باتر معنى ما ماه كخيلي بلان ده كخيلي چه بلان ده اما نورش برای افرادی که میرند در شب خیلی نزدیکه اونایی که در شب میرند نورش براش چیه؟ اینجا با این تشبیه اومد اون دور بودن و نزدیک بودن ممدوحش را ثابت کرد پس یکی از غرض تشبیه همینه که بیان بکنه که مشبه یه چیز ممکنیه دیگه مثلا ساری نیشید. یعنی گروهی که میروند. صار اسم فائل رونده. این محبوب شما چی مثلا دستش سخاوتمنده اگر دورموشه نه امکان بله بله. همانطور که نور ماه خود ماه دوره ولی نورش راحت دیگران ازش استفاده میکنن دور بودن اون به این معنا نیست که پس بخشش نداره. بخششش خیلی نزدیک بخشش خیلی چیه؟ خیلی بخشنده و قال نابغه زبیانی نابغه زبیانی گفته که انک شمسون والملوک اذا طلعت اذا طلعت لم یبدو من هن كوكم. نابغه بگه که گویا که تو خورشید هستی و ملوک دیگر کو... ست... ستاره ها زبانی که تو طلو کنی دیگه ستاره پیدا شد خورشید که طلوع کنی شما ستاره روزا ستاره میبینی نه دیگه تو این اومد چکار کرد این جان یعنی بخاطر ستاره نیست بایدو این. بایدو از باید می اینجا بخواد ببین اینجا بخواد حال ممدوح رو بیان بکنه. یا بخواد حال ممدوحش رو چیکار بکنه؟ میگه تو مانند خورشیدی و بقیه پادشاهان مانند چی اند؟ ستارگان زمانی که تو طلوع بکنی یا اینجوری بخوری شاه اعراب گذاری نکردی. اذا طلعت یا زمانی که خورشید طلو کرد لم یبدوبنه نکاو کوون هیچ ستاره باقی نمی مونه ستاره وقتی که که آره دیگه موقع خورشید ظاهر ستاره هستند هستن تو آسمان ولی دیده نمیشن دیگه شما یه مسئله ال یعنی به از بحث این کتاب داری میپرسید درسته؟ سه وقال المتنبی فی وصف اسد، متنبی در توصیف شیر اینجوری میگه، ما قوبلت عیناه الا ظنه تحت الدجا نار الفریق حلوله. چشمای اسدو و داره توصیف میکنه میگه مقابله نمیشه دوچشمش یعنی دیده نمیشه دوچشم شیر مگر اینکه که گمان برده میشه زیر تاریکی که این آتش گروهی که اومدند یک جای چکار کردند اقامه کردند میگی چطوری زمانی که در شب گروه بیان یه جای آتش روشن کنند رنگش به چه شکله میگی این دو چشمه شیر چشماش اینجوری چیه قرمزه ما قوبلت عیناه الا ظنتا تحت دو جا نار الفریق مقابل نشده دو چشمش مگر این که گمان برده میشه زیر تاریکی که آتش گروهی که یک جایی مقیم کرده اند به چه شکله؟ این دو چشم اسد هم به همین دو شکله متوجه شده اینو <تصفيق> <تصفيق> <میخطار> بله <بانشه> مقدار این قرمزی رو میخواد چیکار کنه بیان کنه که به چه اندازه هست بعدا بیاد آیه کریمه وقال تعالی والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباصت كفيه الى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه کسانی که فرامیخارند جزء الله را آن معبودان آنان را اجابت نمیکنند به یعنی آن معبودها هیچ اجابتی اون دعا کنندگان را نمیکنند مگر بمانند اون کسی که دو کف دستش را به سمت آب دراز کرده است تا آبو بیاره به دهانش و ما هو ببالغه اما نمیتونه چطوری میگه شما زمانی که با مشت آب آبو بیاری از, لا، از لای انگشتان آب خالی میشه همینطوری زمانی که شما یک کسی رو که توانایی نداره فرا میخونی هیچ کاری نمیتونه برایت انجام بده اینجا در این آیه کریمه الله بطال میخواد چی کنه میخواد این حالت رو بکنه در ذهنها میخواد این حالت رو در ذهنها چکار بکنه تأکید و تثبیت و واضح بکنه میگه شما که دارید بوتارو رو ندامی زنید بابا کار تو مثل این چیز میگوره با این مثال با این تشبیه بخواد اون مسئله رو تو خوب جای گزین بکنه خوب قرارش بده بله سال بعدی وقال ابو الحسن الانباری ابو الحسن انباری میگه فی مصلوبا در مورد مصلوب شخصی رو آویزان کرده بودند ایدام به قول امروزی این آقای انباری میاد ابو انباری انباری اینو تشبیه میکنه به خاطر تزیین خاطر این که این کارو چون ببین چون کار بدیه آ یعنی منظور اینه که الله از حالت خوبی نیست زهنها زیاد باش سازش بخاطر که این مصلوب بودن این آقا رو در ذهن اینا جوری دیگه جلوه بده میگه مدد ت که نحوه محتفائا کمدهما الیهم بالهباتی چقدر قشنگ میگه دراز کردگی دو دسانت را به سمتشان ها یعنی موقع دو با چوب بسه بودند و خوب این آویزان بود دیگه دستاش بسه بودن بدار میگه زمانی که تو آویزان بودی دستای تو با چوب بسه بود همانطور دستانت دراز بودند که زمانی که داشتی دراز کرده بودی و مردم رو حوه میدادی یعنی این حالت تو انسانو شبیه به اون حالتی که داشتی به مردم چی میدادی؟ چیز میدادی با هر دون دستی دورا دستان رو دراز کردی و, و مردم رو بخشش میدادی میگه این شعر در پاورقی آورده پاورقی همین کتابا احتفای یعنی مبالغه در اکرام کردن ببین در پاورقی آورده میگه این شعر عبالحسن انباری بهترین شریک در موردش شخص مصلوب گفته شده تا جایی که از اون دو دوله که دستور داده بود اون آقا رو اعدام بکنند بیگه تمنا کرد که این شخص مصلوب خودش بود آه از بس که زیبا تشبیه شاورده بود شایر بودش شدی؟ پس یکی از اغراض همینه که با تشمیح میخواد یه چیزی رو چکار بکنه؟ تزیین بکنه مثل این بیت یا میخواد تقبیحش بکنه با تشمیح آخرین مثال رو دقیقت کن وقال اعرابیون فی ذنب امرائته اعرابی با دیانشین در مذمت زن، زنش اینجوری آورده این تشمیحو ببین چقدر خود ها قشنگ در بیان کردن قبح نگاه کن چقدر شم... میگه و تفتح لا کانت فمن لو رأیته توهمته باب من النار یفتح میگه باز میکنه دهان رو خدا نیستش بکنه نابودش بکنه لا کانت یعنی yani نباشد دعایه هست لاکانت چه هست مگه تفتح لا انت فممگه نش رو باز میکنه فلو رأیتهو اگر تو اونو ببینی تو بابا من ناری افتحو گمان میکنی که دروازی از جهنم باز شده ها؟ از بس که این زنه بیچاره همیشه دهانش باز بوده و اینو میگفته و میگفته این بادیه بیچاره بیاد دروازی از دروازه چی افتاده جهنم افتاده حالا این تشمیحو اینجا به چه غرضی آورد میخواد که اون قبحه بو شبه بیان بداره خوب تا اینجا کار کارکاکی انشالله جلسه بعدی تشمیح مقلوب و خواهیم خوند این استاد مدد ای که نحو همو نحو همو یعنی تو دو دستت رو به سمت آنها دراز کردی ای در یعنی آره آره یعنی زمانی که تو مسلوب هستی دو دراز هست دار به مانند یه که دستات دراز بودن دو مردم چی میدادی بخشش میدادی قشنگه دیگه